مرا میبینی و هردم زیادت میکنی دردم تو را میبینم و میلم زیادت میشود هردم به سامانم نمیپرسی نمیدانم چه سرد به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم نراح هستین که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی گذاری آرو بازم پرس تا خاک رهت کردم. ندارم دستت از دامن به دوز در خاک و آندم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم فرو رفت از غم عشق دمم دم میدهی تا کهی دمار از من براوردی نمیگوی براوردم فرو رفت از غم اشقدمم دم میدهی تا که دمار از من براوردی نمیگوی براوردم شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز میجستم رو ختمی دیدم و جامی حلالی باز میخوردم کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم تو خوش می باش با حافظ بروگ و خس جان میده. ده چو گرمی از تو می بینم چه با کس خسم دم سردم